اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا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 بلکه روز مجازات و عذاب است و فرشتگان میگویند بهشت بر شما ممنوع است و ما به هر گونه عملی که انجام داده اند پس آن را چون قبار پراکنده در هوا قرار می دهیم أصحاب يومئذ خير مستقرا مقيلا بهشتیان در آن روز جایگاهشان از همه بهتر و استراحتگاهشان نیکوتر است و یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنذلا و به یاد آور که آسمان با ابر ها شود و فرشتگان چنان که باید پی در پی فرود آورده شوند الملک یومئذ للرحمن و كان على فرمان روائی راستین و حقیقی در آن روز از آن خداوند رحمان است و آن روز روز سختی بر کافران خواهد بود و اوم والی معالقول یالیتننی ت تو مع الرسول سببیله و بیادا بر روزی کسه تمکار از حسرت دست خود را میگزد میگوید ای کاش من با رسول راهی برگزیده بودم. يا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خليلا ای وای بر من ای کاش فلانی را دوست نمی گرفتم لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا براستی او مرا از ذکر گمرا ساخت بعد از آن به سوی من آمده بود و شیطان هموار انسان را تنها و خار می‌گذارد. گذارد. و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا و قیام بر خدا گوید پروردگارا بیگمان قوم من این قرآن را رها کردند.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 و کافران هیچ اعتراض و مسئلی برای تو نمی آورند مگر آنکه برای تو حق و پاسخی نیش بیانتر می آوریم الَّذِينَ يُخْشَرُونَ عَلَى مُجُوهِهِمْ جهنم جَهَنَّمَ اولائک شرم مکانا و اضل سبیلا کسانی که بر چهرههایشان به سوی جهنم محشور می‌شوند، اینان بد جایگاهتر و گمراهتر هستند. و لقد آتینا موسا الکتاب و جعلنا هارون وزیرا. و زیرا. و ما به موسی کتاب دادیم و برادرش هارون را همراه او مدد کار او قرار دادیم. فَقُلْ نَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِ آیَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا آنگاه گفتیم شما دو نفر سوی قومی که آیات ما را تقزیب کردند بروید پس آنها را به شدت هلاک و نابود کردیم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 و كل ضربنا له الأمثال و تبرنا تتبيرا. و برای هر یک از آنها مثال‌ها زدیم و همیشه آنها را سخت نابود کردیم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر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 ان كاد لا يضلنا عن الهتنا لولا ان صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلًا اگر ما برپرستش خدایانمان استقامت نمیکردیم نزدیک بود که ما را از پرستش آنها گمراه کند و چون عذاب الهی را ببینند به زودی خواهند دانست چه کسی گمراه تر بوده است ارا من هواه علیه آیا دیدی کسی را که هوای نفس خود را معبود خود برگزیده است آیا تو توانی بر او وکیل و نگهبان باشی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 الم تر الی ربك كیف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم اجعلنا الشمس علیه دلیلا آیا ندیدی چگونه پروردگارد سایه را گسترانیده است و اگر میخواست آن را ساکن قرار میداد پس خورشید را بر وجود آن دلیل قرار دادیم ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا سپس آن سایرا اندک اندک به سوی خود باز میگیرین و هو الذي جعل لكم اللیل لباسا و النوم ثباتا و النهار نشورا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 و انزلنا من الزمائی ما انطهورا. و او کسیست که بادها را بشارت دهندگانی پیشا پیش رحمتش فرستاد و از آسمان آبی پاک نازل کردیم لنحیی به بلدتا میتا و نسقیه مما خلقنا انعاما و كثيرا. تا به آن سرزمین مرد ای را زنده کنیم و آن را به چهار پایان و انسانهای بسیاری را که آفریده ایم بنوشانیم وَلَقَدْ تَصَرَّفْنَا بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا فبِراْسْتِي ما آنَ آبَ بَارَانَ را در میان آنها تقسیم کردیم تا متذکر شوند پس بیشتر مردم جز ناصپاسی را قبول نکردند ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا واذا نيخواستيم در هر قریه و دیاری بیم دهنده ای می فرستادیم فلا تطع الكافرين وجاهدهم جهادا كبيرا پس ای پیامبر از کافران اطاعت مكن. وسیله آن با آنها جهاد بزرگی بنما. و آنکه مرج البحرین هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا و او است که دو دریا را به هم آمیخت این گوارا و شیرین و آن شور و تلخ است و در میان آن دو ها عل و مانعی استوار قرار داد و هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صبرا و کان ربک و او کسی است که از آب انسانی را آفرید آنگاه او را پیوند نسبی و سببی قرار داد و پروردگار تو تواناست و یعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يبرهم و کان الكافر على ربه ظهیرا و مشرکان به جای خداوند چیزی را می پرستند نه به آنها سود می بخشد انا به آنها زیانی میرساند و کافر پیوسته در برابر پروردگارش پشتیبان یکدیگر و یاور شیطان است و ما ارسلنا که جز مبشر و نبیرا. به ای پیامبر ما تو را جز بشارت دهنده و بیم دهنده نفرستادیم قل ما أسألكم عليه من اجر إلا من شاء أن یتخذ ربه سبيلا. بگو من در برابر تبلیغ آن هیچ گونه مزدی از شما نمیطلبم. مگر کسی که بخواهد راهی به سوی پروردگارش برگزیند و توکل على الحیی الذي لا يموت وسبح بحمده و کفا بهی بدنوب عباده خبیرا. و بر ای که هرگز نمیمیرد میرد توکل کن و به ستایش و او تسبیح گوی و همین بس که او به گناهان بندگانش آگاه است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 پس در باری او از کسی به پرس که آگاه است وإذا فلم لهم الرحمن للرحمن قالوا وما الرحمن و, من قالوا و من أنس رحمان م مون و هنگامی که به آنها گفته شود برای خداوند رحمان سجد کنید گویند رحمان چیز. او را نمیشناسیم. آیا برای چیزی که تو به ما فرمان میدهی سجده کنیم و بر نفرت و گریزشان ابزود شد تبارک الذی جعل في السماء بروجا وجعل فیها سراجا و قمرا منيرا پربرکت و بزرگوار است کسی که در آسمان برج‌های قرار داد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 وَالَّذِينَ يَبِیْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِیَامًا وَكَسَانِی که شب را برای پروردگارشان سجد کنن و قیام کنن میگذرانند. والذین وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّ نَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جهنم. إن اِنَّ و کسانی که میگویند پروردگارا عذاب جهنم را از ما برطرف کن بی‌تردید عذابش سخت و پایدار است اینا سَتَطْرًا بیگمان آن جهنم بد قرارگاه و بد اقامتگاهی است وَالَذِينَ إِذَا أَنْثَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُووا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا و کسانی که چون انفاق کنند، اسراف نمی نمایند، و سخت کری و بین این دو روش اعتدال دارند. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَذْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا و کسانی که با خداوند معبود دیگر را نمیخانند.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 باقراری وزالت در انجام دان خواهد ماند. اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَائِكَ فَأُولَئِكَ يُبْدِلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا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 و کسی که توبه کند و عمل صالح انجام دهد پس بیگمان او چنان که باید به سوی خداوند بازگشت می والذین لا لَا الزور واذا مروا باللغو مروا كراما و کسانی که شهادت دروغ نمیدهند، و چون بر کار لغ و بیهوده بگذرند بزرگوارانه از آن می گذرند اذا اِذَا دُکِّرُوا ربهم لم یخروا لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا و, و کسانی که چون به آیات پرورد گارشان پند داده شدند کر کور بر روی آن نمی افتند والذين يقولون ربنا هب من ازواجنا وذررياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما فكساني کی میگویند پروردگارا از همسرانمان و فرزندانمان مایه‌ی روشنی چشم به ما عطا فرما و ما را برای پرهیزگاران پیش واقرار قرار بده اولائك یجزون الغرفه بما صبروا ويلقون فيها تحيه و سلام آری اینان به خاطر صبری که کرده اند درجات عالی بهشت به آنها پاداش داده می شود و در آن با تهیت و سلام استقبال می شوند فیها مستقر و مقاما. در آن جاودان خواهند ماند چه نیکو قرارگاه و نیکو اقامتگاهی است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 بسم الله الرحمن الرحیم قاتیم تا سین مین. تلک آیات الكتاب المبين. این آیات كتاب روشن است. لعلك باخع نفسك ألا یكونو منن گویی میخواهی از شدت غم و اندوه اینکه آنها ایمان نمیآورند خود را هلاک کنی إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها قاضعين اگر بخواهیم از آسمان بر آنها نشانی نازل می‌کنیم که گردن‌هایشان در برابر آن تسلیم گردد او ما یاتیهم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 به راستی آنها تکذیب کردند پس به زودی اخبار آنچه را که به آن استهزا و تمسخر میکردند به آنها خواهد رسید اولم الارض كم انبتنا فيها من كل زوج کریم. آیا به زمین ننگریسته اند که چقدر از هر گونه گیاهان نیکو و پر ارزش در آن رویانی این؟ این نفی ذالک لآیه و ما کان مؤمنین بیگمان در این نشانه بزرگی است و بیشتر آنها مؤمن نیستند و این ربک لهو العزیز الرحیم. و به راستی پروردگارت و پیروزمند مهربان است و اید نادا ربک موسا انئتی القوم الظالمین و بیاد بیاور هنگامی را که پروردگارت موسا را نداداد که به سوی قوم ستم کار برو قوم الا یستقون فرعون آیا آنها نمی ترسند قال رب انی اخاف ان یکذبون موسی گفت پروردگارا من می ترسم که مرا تکذیب کنند ويضیق صدری ولا ينطلق لسانی فأرسل إل هارون و سینهام تنگ گردد و زبانم باز نشود پس برادرم هارون را نیز رسالت ده تا مرا یاری ولهم علی ذنب فأخاف أن یقتلوا و آنها برگردن من ادعای گناهی دارند پس می‌ترسم که مرا بکشند. قالکلل فذهب با آیاتنا انا معكم مستمعون خداوند فرمود چنین نیست پس شما هر دو با آیات ما بروید یقینا ما با شما شنوندگان هستیم فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ پس به نظر فرعان بروید و بگویید ما فرستادی پروردگار جهانیان هستیم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 وفعلت فعلت فعلت فعلت و انت من الكافرین و بالاخره آن کارت را که نبایست انجام میدادی انجام دادی و تو از ناسپاسانی قال فعلت ها اذا و من الضال سو گفت من آن کار را آنگاه انجام دادم که من از بیخبران خبران بودم ففررت منکم لما خفتکم فوهبلی ربی حکما وجعلنی من المرسلین پس چون از شما ترسیدم از شما فرار کردم آنگاه پروردگارم به من دانش و نبوت بخشید و مرا از پیام بران قرار داد و تیلک نعمت تمنها علی انعبدت بنی اسرائیل و آیا این نعمتی است که تو بر من منت میگذاری که بنی اسرائیل را برده خود ساخته ای؟ قال فرعون و رب آن گفت پروردگار جهانیان چیست قال رب السماوات والارض وما ان موسی گفت پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است اگر اهل یقین هستید قال لمن حوله الا تستمعون فرعون آنهایی که در اطرافش بودند گفت آیا نمی شنوید قال ربكم و رب ابائكم الاولین موسی گفت او پروردگار شما و پروردگار نیاکان پیشینی شماست قال این رسولكم الذي لمجنون فرعون گفت بی تردید برتان که به سوی شما فرستاده شده دیوانه است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 فرعون گفت پس اگر از راست گویانی آن را بیاور فألقا عصاه فإذا هي تعبان مبين. پس موسا عصای خود را افکند که ناگهان آن اجده آشکار شد و نزع یده هي بيضاء بیضاء و دست خود را در گریبان فرو برد و بیرون آورد که ناگهان در برابر بینندگان سفید و روشن بود قال حوله هذا لساحر به اشرافی که اطراف او بودند گفت بیگمان این مرد جادوگر دانایی است يريد أي يخرجك من او میخواهد با سهرش شما را از سرزمینتان بیرون کند پس شما چه نظر می دهید؟ رضج گفتند: کار او و برادرش را به تأخیر انداز و جمع آوری کنندگان را در همه شهرها بفرست بكل تا هر جادوگر ماهر و دانا را نزد تو آورند تجمع السحرة لميقات يوم معلوم پس سرانجام جادوگران برای بعدگاه روز معینی گرد آورده شدند و للناس هل انتم مجتمعون و به مردم گفته شد آیا شما نیز جمع می شوید؟ لعلنا نتبع السحرات این کانو همو الغالبین تا اگر ساهران پیروز شدند ما از آنها پیربی كنيم فلما جاء السحرات قالو لفرعون ا این لنا لأجرا این کنا نحن الغالبین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 قال لهم موسى ألق ما أنتم ملقون موسى به آنها گفت هرچه میخواهید بیافکنید بیافکنید فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزت فرعون إن لنحن الغالبون پس آنها ریسمانها و عصاهای خود را افکندند و گفتند به عزت فرآن قطعا ما پیروزیم موسی موسا عصاه فإذاهیت القف ما يأفكون. پس موسا عصایش را افکند ناگهان آنچه را به دروغ برساخته بودند بل اید. فالقی السحرة ساجدین پس فاهران سجد کنان به زمین افتادند قالوا آمنا برب العالمین گفتند ما به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم رب موسی و هارون پربردگار موسی و هارون قال آمانتم له قبل اند آذن لكم، اینه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوفتعلمون، لا اقطع عن ايدكم من خلاف منخلاف و لا اصلبنتكم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 اینا الى ربنا گفتند باکی نیست ما به سوی پرور گارمان باز میگردیم گردیم نطمع ایی يغفر لنا ربنا خطایانا ان اولا ما امیدواریم که پروردگارمان خطاهای ما را ببخشد که ما از نخستین ایمان آورندگان بودیم و او وحینا الی موسی ان اسری بعبادی انکم متبعون و به موسی وحی کردیم که شبانه بندگانم را از مصر بیرون ببر بیگمان شما تعقیب می شوید فأرسن فا فرعون فی المدائن حاشرین پس فرعان چون از ماجرا آگاه کردید گردا برندگان نیرو را به شهر خا فرستاد این ها و گفت اینها گروهی اندک و ناچیز هستند و, انهم لنا و اینها ما را به خشم آبرده اند و, لجميع و ما همگی آماده و بیدار هستیم و اخرجناهم جنات و عیون. پس آنها را از باغ ها و چشمه ها بیرون کردیم و كنوز و مقام کریم و نیز از گنج ها و منزلگاه نیکو و قصر مجلل بیرون راندیم و اورثناها بنی اسرائیل آری این چون این کردیم و بنی اسرائیل را وارث آنها ساختیم و اتبعوهم پس آنها صبح گاهان به هنگام طلوع آفتاب به تعقیبشان پرداختند فلما الجمعان قال اصحاب موسى پس چون دو گروه یکگر را دیدند یاران موسا گفتند یقیناً ما در چنگال فرعونیان گرفتار شدیم. قال کلا انَّ <موسا> بَعْيَ ربی سَيَهْدِينِ موسی گفت چنین نیست بیگمان پروردگارم با من است به زودی مرا هدایت خواهد کرد فَاَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ يَضْرِبَ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَبْطَوْدِ الْعَظِيمِ پس به موسا وحی کردین اصایت به دریا بزن آنگاه دریا شکافته شد پس هر بخشی از آن همچون کوه عظیمی شد وَاَزْلَفْنَا ثَمَّلْ آخَرِينَ و دیگران را نیز به آنجا نزدیک ساختیم و انجینا موسی و من معه اجمعین و موسی و همراهانش را همگی نجات دادیم و ما اضرقنا سپس دیگران را غرق کردیم ان فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ بیگمان در این ماجرای نشانه ای روشن است و بیشتر آنها مؤمن نبودند و إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ و بی ترید پروردگار تو پیروزمند مهربان است و, عليهم نبأ ابراهيم و خبر ابراهیم را بر آنها بخان از قال لعبیه و قومه ما تعبدون هنگامی که به پدر و قومش گفت چه چیز را می پرستید قالو نعبد أصناما فنظل لها گفتند، بطهایی را می و پیوسته برای عبادت آنها معتکف هستیم، قال هل یسمعونکم ایب تدعون؟ ابراهیم گفت، آیا هنگامی که آنها را می خانید صدای شما را می شنوند؟ او ینفعونکم او یضرون؟ یا سود و زیانی به شما می‌رسانند قالوا بل وجدنا گفتند نه بلکه ما نیاکان خود را یافتیم که چنین می‌کردند قال افرأیتم ما كنتم تعبدون. ابراهیم گفت آیا دیدید چیزهایی را که پیوسته عبادت می کردید؟ وآباؤكم شما و نیاکان پیشین شما و رب پس همه آنها دشمن من هستند جز پروردگار جهانیان الذي فهو همان کسی که مرا آفرید پس او مرا هدایت می کند و هو و, و کسی که او به من قضا میدهد و سیراب می نماید و اذا مرضت فهو يشفين و هنگامی که بیمار شوم پس او مرا شفا می دهد. ثم و کسی که مرا می راند سپس زنده می کند او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 و پدرم را بیامررد بیگمان او از گمراهان بود و در روزی که همه مردم برانگیخته میشوند مرا رسوا و شرمنده مکن. يوم لا ينفع مال ولا بنون. روزی که مال و فرزندان سودی نبخشد إلا من د الله بغب که با قلب سلیم به پیشگاه خداوند بیاید و ازلیفت الجنمت للمتقین و در آن روز بهشت برای پرهیزگاران نزدیک آورده شود و برزت الجحیم للغاوی. و دوزخ برای گمراهان آشکار کنند و قیل لهم اینما کنتم تعبدون و به آنها گفته می شود کجا هستند آنچه که به جای خدا پرستش میکردید من دون الله هل ینصرونکم او ينتصرون آیا آنها شما را یاری می کنند یا خود انتقام میگیرند؟ گیرند؟ و کبکی بو هم و پس آنها و گمراهان برو در آن افکنده می شوند و جنود ابلیس و نیز همه لشکریان ابلیس قالوا و هم فیها آنها در آنجا در حالی که با یکدیگر دیگر مخاسمه می کنند گویند این کننا لفی ضلال مبین به خدا سوگند که ما در گمراهی آشکار بودیم از نسوی کن بی رب العالمين. چون شما را با پروردگار جهانیان برابر می دانستین و ما اضلنا إلا المجرمون و کسی جز مجرمان ما را گمراه نکرد. و ما لنا من پس اکنون هیچ شفاعت کنندگانی برای ما نیست. و نه هیچ دوست مخلص و مهربانی. بلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين پس ای کاش بار دیگر به دنیا بازگردیم تا از مؤمنان باشیم ان فی ذلك لآیة وما كان أكثرهم مؤمنین بیگمان در این ماجرا ای روشن است و بیشتر آنها مؤمن نبودند. و این ربک لهو الرحیم و بی تردید پروردگار تو پیروز مند مهر است. کذبت قوم نوحی المرسلین قوم نوح پیامبران را تقضیب کردند. اِذْ قَالَ لَهُمْ أَقُوْهُمْ نُوحٌ عَلَى سَسْتَقُونَ هنگامی که برادرشان نوح به آنها گفت آیا از خدا نمی ترسید؟ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ عَمِينٌ مسلمن من برای شما پیام بری امین هستم فَاتَّقُوا الله پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. و ما علي من اجر، ان اجری الا علی رب و من بر رساندن این دعوت هیچ مزدی از شما نمیطلبم. مزد من تنها بر عهده پروردگار جهانیان است. الله و پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید قالو انؤمن لك واتبعك گفتند آیا به تو ایمان بیاوریم در حالی که فرو مایگان از تو پیروی اند؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون نوح گفت من چه ميدانم آنها چه کارها کرده اند این حسابهم الا على ربي لو تشعرون اگر مي فهميد حساب آنها تنها با پروردگار من است وما انا بطارد المؤمنين و من هرگز مؤمنان را ترد نخواهم کرد این انا الا نذیر مبین من جز بیم دهنده ای آشکار نیستم قالو لئن لم تنتهی نوح لتکونن من المرجومین گفتند ای نوح اگر از دعوتت دست بر نداری. اتمان سنگسار خواهی شد بالا ربی ان قوم کذبون نوح گفت پروردگارا همانا قوم من مرا تکذیب کرده اند فافتح بینی و بینهم فتحا و نجنی و من, معی من المؤمنین پس میان من و آنها داوری کن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 سپس بقیه را غرق کردیم این فی ذلك لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین بیگمان در این ماجران شان ایروشن است و بیشتر آنها مؤمن نبودند و این ربک لهو العزیز الرحیم و بی تردید تو پیروز پیروزمند مهربان است <تصفيق> قوم عاد نیز پیام بران خدا را تقضیب کردند این قال لهم اخوهم هود الا تتقون هنگامی که برادرشان هود به آنها گفت آیا از خدا نمی ترسید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 و من بر رساندن این دعوت هیچ مزدی از شما نمی طلبم مزد من تنها بر عهده پروردگار جهانیان است تعبثون. آیا بر هر مکان مرتفعی نشان ای از روی هوا و هوس و بیهوده میسازید و, مطانع تخلدون. و قصرها و قصد ها محکم و استوار بنا می کنید. گویی که در دنیا جاودانه میمانید و اذا بقشتم بقشتم و چون کسی را کیفر دهید همچون جباران کیفر میدهید. الله پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید واتقل بما و از کسی بترسید که شما را به آنچه میدانید مدد کرده است آمدك بون و بنی شما را به چهار پایان و فرزندان مدد و یاری فرموده است و جنات و عیون و همچنین به ها و چشمه ها اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم همانا من از عذاب روزی بزرگ بر شما میترسم. قالوا سواء علینا أوعظت أم لم تكن من الواعظین گفتند برای ما یکسان است چه ما را پند دهی یا پند ندهی إن هذا إلا خلق الولن این جز همان روش پیشینیان نیست وما نحن بمعذبن و ما هرگز عذاب نخواهیم شد فكذبوه فأهلكناهم إن ف ذلك ل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 و بی تردید پربردگارت و پیروز است. کذبت سمود المرسلین قوم سمود پیام بران خدا را تقزید کردند. قال لهم هنگامی که برادرشان صالح به آنها گفت آیا از خدا نمی ترسید؟ اینی لكم رسول بیگمان من برای شما پیام بری امین هستم فتقوا الله پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید و ما اثالکم علیه من اجر این اجریه الا علی رب العالمين. و من بر رساندن این دعوت هیچ مزدی از شما نمی طلبم مزد من تنها بر اختی پروردگار جهانیان است في ما ها هنا آیا می پندارید که شما را در اینجا ایمن رها می کنند؟ في در این باغ ها و چشمه ها و ناخلی و و در این ذراعتها و نخل هایی که شکوف هایش نرم و رسیده است تنحتون من الجبال بیتن فری و شادمان از کوهها خانههایی میتراشید. فاتقوا الله پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید و لا تطیعوا امر و فرمان اصراف کارن را اطاعت نکنید الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْعَرْضِ يُصْلِحُونَ همان کسانی که در زمین فساد می کنند و اصلاح نمی‌کنند. کنند قالو انما انت من المسحرین گفتند ای صالح جز این نیست که تو از جادو شدگانی ما ت إلا بشر مثلنا فأتی ب ن كنتمن الصادقن تو جز بشری همانند ما نیستی پس اگر از راست راستگویانی نشانهای بیاور قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلومصالح فت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 فعطروها پس آن را پی کردند، آنگاه از کرده خود پشیمان شدند فأخدهم العذاب، این فی ذالک لایه و ما کان مؤمنین پس عذاب الهی آنها را فرو گرفت بیگمان در این ماجرا نشانه ای است و بیشتر آنها مؤمن نبودند و ان ربک لهوالعزیز الرحیم و بی تردید پروردگار تو پیروزمند مهربان است کذبت قوم لوط المفسلین قوم لوط نیز پیامبران خدا را تکذیب کرده اند اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون هنگامی که برادرشان لوط به آنها گفت آیا از خدا نمیترسید؟ اینی لكم رسول بیگمان من برای شما پیام بری امین هستم فاتقوا الله پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید و ما اسألكم عليه من اجر این اجریه الا على رب العالمی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 بل انتم قوم عادون و همسرانی که خدا برای شما آفریده است رها کنید بلکه شما قومی متجابز هستید قالوا لئن لم تنتهیانو قلت لتكونن من المخرجین گفتند ایلوت اگر دست بر نداری یقیناً از اخراج شدگان خواهی بود قال لعملكم من لود گفت من دشمن سرسخت عمل شما هستم ربنا مما پروردگارا من و خانواده امرا از عاقبت آنچه اینها انجام می دهند نجات بده و اهله پس او و خانواده اش را همیگی نجات دادیم إلا عجوزا فی مگر پیرزنی که در میان بازماندگان بود ثم دمرنا الخرین سپس دیگران را نابود ساختیم وأمطرنا علیهم مطر و بر آنها بارانی از سنگ بارانیدیم پس باران بیم داده شدگان چه بد بود ان نفی ذالک لآیه و كان کان مؤمنین بی در این ماجران شانه ایست و بیشتر آنها مؤمن نبودند و این ربک لهو العزیز الرحیم و بی تردید پروردگار تو پیروز منده مهربان است کذب <تصفيق> اصحاب الایکت المرسلین اصحاب ایک پیامبران خدا را تقذیب کردند قال لهم شعیب الا تتقون هنگامی که شعیب به آنها گفت آیا از خدا نمی ترسید اینی لکم رسول امین همانا من برای شما پیام بری امین هستم الله و پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید و من از علیه من اجر ان الا على رب العالمین و من بر رساندن این دعوت هیچ مزدی از شما نمی طلبم مزدما تنها بر عهده پروردگار جهانیان است و پیمان را تمام بدهید و از کاهندگان و کم نباشید و با ترازوی درست وزن کنید. و تبغصوا ما آتيناكم و ولا, تبخس الناس ولا تعفو في الأرض مفسدين و چیزهای مردم را کم ندهید و در زمین به فساد نکوشید و ان تقول الذي خلقكم والجبلة الاولی و از کسی که شما و آفریدگان نخستین را آفرید بترسید گفتند ایش و جز این نیست که تو از جادو شدگانی و ما ان... إلا مثلنا وإن تو جز بشری همانند ما نیستی و تو را از دروغ گویان میپندداریم فأسطلَنا ك تَسمَِ السنائِ قت من السماء پس اگر از راستگویانی گویانی از آسمان را بر سر ما بینداز قال ربی اعلم بما تعملون شعیب گفت پروردگارم به آنچه انجام میدهی داناتر است فکذبوه فأخذهم عذاب یوم الظله اینهو کان عذاب يوم عظيم. پس او را تکذیب کردند آنگاه عذاب روز سای آنها را فرو گرفت بیگمان آن عذاب روز بزرگی بود این فی ذالک لآیه و ما کان اکثرهم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 و همانا این قرآن نازل شده از جانب پروردگار جهانیان است نزل به روح الامین آن را فرود آورده است علا قلب بر قلب تو تا از هشتار دهندگان باشی بلیسان عربی آن را به زبان عربی روشن نازل کرد و اینه لفی زبر و همانا توصیف آن در کتاب های پیشین یا نیز آمده است اولم یکن لهم آية این یعلمه لما بنی اسرائی آیا همین نشان برای آنها کافی نیست که علمای بنی اسرائیل از آن آگاهند؟ ولو نزلناه على بعض اعجمین و اگر آن را بر بعضی از اجمیان نازل می کردیم فقرأهو علیهم ما كانوا بهی مؤمنین پس او آن را برایشان می به آن ایمان نمی آوردند في قلوب المجرمين اینگونه آن تکذیب را در دلهای مجرمان درآوردیم لا يؤمنون به حتى العذاب الالیم. به آن ایمان نمی آورند تا عذاب دردناک را با چشم خود ببینند وهم لا يشعرون پس ناگهان در حالی که بیخبرند به سراغ آنها میآید فقولو هل نحنمون و آنگاه میگویند آیا مهلتی به ما داده خواهد شد فبی عذاناسعجنون آیا برای عذاب ما شتاب می کنند؟ آیا دیدی که اگر سالیانی آنها را از این زندگی دنیا بحرمند سازیم؟ زمجاهم ما سپس آنچه که به آنها وعده داده شده است به سراغشان بیاید. ما عنهم ما كانوا این مندیشان از دنیا سودی برای آنها نخواهد داشت. وما ما اهلکنا من قریت الا لها منذرون و هیچ قریه ای را حلاک نکردیم مگر این هشدار دهندگانی از پیام بران داشتند ذکرا و ما کننا ظالمین برای پند دادن و ما هرگز گست کار نبودیم و ما تنزلت به الشیاطین. و شیطانها هرگز این قرآن را نازل نکرده اند. و ما یا لهم و ما يستطيعون. و برای آنها سزاوار نیست و نمی إنهم عن السماع لمعذولون بیگمان آنها از شنیدن وحی و استراق سمع بر کنارند فلا تدعو معالله الهن آخر فتکون من المعذبین پس ای پیامبر هیچ معبودی را با الله مخوان که از عذاب شدگان خواهی بود و اندرعشیرت کل اطربی. و خیشابندان نزدیکت را هشدار بده و خفض جناحک لمن التبع که من المؤمنین و بال رحمت و فروتنی خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می کنند بگستر فا این عفو کف قل اینی تعملون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 همان کسی که تو را به هنگامی که برای عبادت برمیخیزی میبیند اتقللو کف و نیز حرکت و نشست و برخوااست تو را میان سجد کنندگان میبیند. این نه موسممی همان او شنوای داناست هل اونبعکم على شیاطین آیا به شما خبر دهم که شیاطین بر چه کسی نازل می شوند؟ تنزل على كل افاک اثیم بر هر دروغگوی گنکار نازل می گردند یلقون السمع و اکثرهم كاذبون. به شیاطین گوش پرامی دهند و بیشترشان دروغگو هستند و شعراء یتبعهم و شاعران کسانی هستند که گمراهان از آنها پیروی می کنند الم تر انهم فی کل وادی يهیمون. آیا ندیدی که آنها در هر وادی ای سرگشته و حیران هستند؟ و انهم یقولون ما لا يفعلون. و بی گمان آنها چیزی میگویند که خود به آن عمل نمی کنند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 قاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین تاسین این آیات قرآن و کتاب مبین است هدن و بشرال که هدایت و بشارت برای مؤمنان است الذي یقیمون الصالت وؤتون الذکات وهم باخرات هم یوقون هم همان کسانی که نماز را برپامی دارند و ذکات را ادا میکنند و آنها به آخرت یقین دارند ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمون بیگمان کسانی که به آخرت ایمان نمی آبرند. اعمالشان را برای آنها زینت داده ایم پس آنها سرگردان میشوند اوولائك الذي لهم سوء العذابی وهم ف الاخرات هم, هم آنها کسانی هستند که عذاب بد و برایشان است و آنها در آخرت زیانکار ترینند. و این مکلت لقل قرآن من لدن حکیم علیم و تو این قرآن را از سوی خداوند حکیم دانا دریافت میداری داری از قال موسى لأهله اینی آنست نارا سآتیکم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 و کسی که پیرامون آن است و منظه است خداوندی که پروردگار گار جهانیان است یه موسیوا العزیز الحکیم ای موسا همانا من خداوند پیروزمند و حکیم هستم و القی فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَا مُذْبِرٌ وَلَمْ يُعْقَبِ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ وَعَصَايَت <تصفيق> رَافِعَةٌ پس چون آن را دید که با سرعت می گویی که آن ماریست ترسید و به عقب برگشت و پشت سر خود نگاه نکرد ای موسا نترس که پیام بران در نزد من نمی ترسند إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء مگر کسی که ستم کند پس توبه کند و بدی را به نیکی تبدیل نماید پس بیگمان من آمرزنده مهربان هستم وادخل يدك في جيبك تخرج بيضا من غير سوء في تسع فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين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 پس چون آیات روشن و کاملا آشکار ما به سراغ آنها آمد گفتند اینجا جادویی آشکار است و جحدو بها و سیقنتها انفسهم ظلم و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 وقال الحمد الله الذي صَّنا على كثيریم من عیبیم مؤمنیم و به راستی بداود و صلیمان دانش عظزی میدادیم و آنان گفتند ستایش از آن خدای است که ما را بر بسیاری از بندگان مؤمن خود برتری بخشید. و ورثه لیمان داوود. و قال یا أيها الناس علمنا منطق الطير و اوتنا من كل شيء. إن هذا له الفضل المبين. پس سلیمان وارث داوود شد و گفت. ای مردم، زبان پرندگان به ما اند و از هر چیز به ما عطا شده بی تردید این فضل آشکاریست است لسلیمان جنوده من الجن والانس فهم يوزعون و برای سلیمان لشکریانش از جن و انس و پرندگان گرد آورده شدند انگاه نگاه داشته شدند تا همه آنها به یک دیگر بپیوندند حتی اذا اتوا على واد نمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا تحطمنكم سليمان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 فتبثم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني وقال رب اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني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 یا او را زب خواهم کرد یا باید دلیلی روشن برای قیبتش برای من بیاورد برد فمکت غیر فقال احطت بما لم تحط به و جئت کمین سبعین بینبعین پس درنگش چندان طول نکشید که هدهد آمد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 ووجدتم راته تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم من زنی را یافتم که بر آنها فرمان می میکند و به او از هر گون نعمتی داده شده است و تخت عظیمی دارد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 انلا یسجدوا لله الذي یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون چرا برای خداوندی سجده نمیکنند که آنچه را در آسمانها و زمین پنهان است بیرون میآورد و آنچه را پنهان میدارید و آنچه را می میکنید همه میداند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 سپس از آنها روی به گردان پس در گوش ای توقف کن بینگر که چه جواب میدهند. دهند قالت یا ملکی سبا گفت ای بزرگان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 اللاتعلو علي واتوني مسلمين برمن برتری مجوید و تسلیم شدن نزد من بیاوید قالت يا ايها الملأ افتوني في امري ما كن تقاطعه امرا حتى تشهدون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 و اینی مرسلتون الیهن هدیت به هدیت سناظرتون یرجع المرسلون و همانا من هدیعی برای آنها می فرستم پس می نگرم که فرستادگان چه جواب می آورند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 ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود اللس بل لهم بها ولنخرجنهم, ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون أكنون بسوي آنها بازگرد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 افریتی از جن گفت من آن را نزد تو آورم پیش از آنکه از جایت برخیزی و همانا من بر آن توانای امین هستم قال الذی عنده علم من الكتاب أنا آتیك به قبل أن يرتد الیك طرفك فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوََنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ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 و آنچه به جای خدا می پرستید او را از ایمان به خدا باز داشته بود بیگمان او از قوم کافران بود قیل لهد دخول صرح فلما رأته حسبته لجة و عن ساقیها قال اینهو صرح ممرد من قواری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 سلیمان گفت این آب نیست این صحنی صاف از آبگینه است ملکی گفت پروردگارا من به خود ستم کردم و اینک با سلیمان برای خداوند پروردگار جهانیان تسلیم شدم و لقد ارسلنا الى ثمود اقاهم صالحا انعبدوا الله فا اذا هم فریقانی اختصمون و براستی به سوی قوم سمود برادرشان سالح را فرستادیم که خدای یگانه را بپرستید آنگاه آنها دو گروه شدند که به مخاسم پرداختند قال یا قومی لم تستعجلون بالسیئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون صالح گفت ای قوم من چرا پیش از نیکی بر بدی میشتابید و به جای رحمت عذاب الهی را میطلبید چرا از خداوند آمرزش نمیخواهید تا شاید مورد رحمت قرار گیرید قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون گفتند ما به تو و کسانی که با تو هستند فال بد این سالح گفت، فال بد شما نزد خداست، بلکه شما گروهی هستید که مورد آزمایش قرار می گیرید. و کان فی المدینه تسعت رهط یفسدون فی الارض ولا یصلحون و در آن شهر هجر نه نفر بودند که در زمین فساد می و اصلاح نمی قَالُوا تَقاسموا بالله لنبيتاه وأهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون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 فانظر كيف كان عاقبه مكرهم ان ندمناهم وقومهم اجمعين پس ببین گر عاقبت نیرنگشان چه شد ما آنها و قومشان همگی را نابود کردیم فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا في ذلك لآیت لقوم يعلمون. پس این خانهای آنهاست که به سزای ستمی که می‌کردند خالی مانده است بیگمان در این ماجرا نشانه است برای گروهی که می‌دانند و أن الذين و کسانی را که ایمان آورده و پرهیزگار بودند نجات دادیم و لوت را بیاد آور هنگامی که به قومش گفت آیا کار بسیار زشت مرتکب می شوید؟ در حالی که خود سرانجام و زشتی آن را میبینید نکم لتأتون الرجال شهوت من دون مساف بل أنتم قوم تجهلون آیا شما به جای زنان از روی شهفت سراغ مردان میروید؟ بلکه شما مردمی نادان هستید